بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازم اکربان نهایت بارشد آیا کسی را که روز جزا را تکزید می کند دیدی؟ این همان کسی است که یکیم را با اهانت میراند و به تام دادن به محتاج تشویق نمی کند پس وای بر آن گزارانی که از نمازشان غافلند آنانی که ریا می کنند و سامان مورد نیاز نیاز دان را از ایشان دریغ می دارد.